بسم الله الرحمن الرحیم رسیده بودیم به بیت چندوم بیت یازدهم بیت یازدهم میگه که كه... بله اولین قاعده گفتیم در مقدمه که این منظومه دارای 47 بیت است تا ده بیت اولش هیچ قاعده ای رو بیان نکرد مقدمه ی بودو کلن این به شکل کلی حدود سی و خردی قائده رو از مهمترین قواعد اینجا جمع کرده خب اولین قائده ایش که بیانش میکنه در بیت یعزه یکی از همون قواعده پنجگانه کوراست همون قواعده چیه؟ پنجگانه کوراست که میگه انیتو شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل باله نيات شرط هست براي سائر كار يعني براي هر كار نيات جهاز شرط هست باله بعدش ميجيكي النية شرط لسائر العمل نية شرط هس براي سائر عمل بها الصلاح والفساد للعمل صلاح وفساد عمل بس تبتش هس بنية هس بها علي بس اين همون قائديس كي در ناس ري انجري بيانش ميكونن كالأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها, بمقاصد. بمقاصدها. در قرآن کریم ما آیات زیادی رو داریم که اعمال باید ابتغاء مرزات الله باشند اعمال باید چی باشند؟ ابتغاء مرزات الله و اون حدیث مشهور هم میگه انما الاعمالو به نیات در همین حدیث در همین حدیث آیات زیادی داریم و برای, برای تایید این قاعده ما آیات بیشمار داریم فمن تعمدت قلوبكم. یعنی نیت و میده در چی؟ در افعال حتی اون کارایی که نیازه به زمانت دارند اگر با نیت انجام بگیرند آثار فرق میکنه اگر بدون نیت باشند قتل اگر با نیت باشه آثارش فرق میکنه اگر بدون نیتو خطا باشه که البته این بحث عمد و غیر عمد بودن هست ولی آیاتی که بحث نیتو میارن زیادن بعضی از آیات به شکل کلی در رابطه با نیت بحث میکنن بعضی در رابطه با اخلاص و اخلاص یک کاریست که ربط به داره؟ به نیت خالصانه داره یعنی رابطه ارتباط بین نیت و اخلاص آن مخاص مطلقه هر اخلاصی نیت است ولی هر نیتی؟ آره ممکنه یک نیتی نیت ربایی باشه خاطر ریاد طرف کار رو انجام بده نیتش چیزی دیگه باشه ولی اخلاص نه که اخلاص زیر مجموعه چیه؟ نیته پس قائده اول که الامور بمقاصدها قائده است که عادات از عبادت چکار میکنه؟ جدا میکنه در همین حدیث اومده بود فمن كانت هجرته، الى الله ورسوله، فهجرته الى الله ورسوله. هرکس هر کس نیتش بخاطر الله ورسول رسول بوده باشاد پس به همان بر اساس همان نیت عجر داده می و هر کس نیتش به خاطر زنی باشد که با او ازدواج کند نیتش بر همان اساس است ببین بعضی این حدیثو رو اینجوری معنی میکنند که هر کسی نیتش به خاطر زنی باشد یا به خاطر دنیا باشد به آن میرسد اینجوری نیست هر کس هر چیز رو نیت کند به آن میرسد در دنیا این معناش دواره معنی جمله اینجوری ادامه داره هر کس نیتش بخاطر زن یا بخاطر دنیا باشد که به آن برسد بر اساس آن نیت چی داده می شود؟ اجر و پاداشو برخورد بر اساس همان چی هست؟ نیتش هست پس این قاعده بسیار بزرگه نیت هست اولین قاعدش که نیت و شرطون لسائر العمل بی هست و الفصاد للعمل بله نیت مبتدای شرطن هم خبرشه نیت شرط هست برای سایر عمل بیه صلاح و الفساده للعمل صلاح و فساد عمل و بس بنيت هند باره اینما الاعماله بنيات بس قائده اولو که از قوائد پنجگانه کبرا هست بیانش کرد قائده بادیلو ميگه الدین مبنیون على المصالحی في جلبها والدرء للقبائحي الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائحي ميجد الدين بناي بر جلب مصلحة استو درء مفسدو قبيح بالي اين هم از قوائد بزرگ دیگر هست این هم از قواعد بزرگ دیگر هست که میگه دین مبنی بر مصلحت هست در جلب مصلحت ببین علالمصالح فی جلبها بنا هست بر جلب مصلحت برای کسب مصلحت برای به وجود آوردن مصلحت و درء للقبائح و دفعه مفسدها اصلا در این رابطه علماء خیلی کار کردند این کتاب و الاحکام فی مصالح الانام اینجا والیکم السلام و رحمت الله شیخ عز السلام رحمه الله این کتابو در این رابطه خوب آره یا مثلا شیخ امام شاطبی در موافقاتش اصلا جلد دومش کلا کتاب مقاصده و در معاصرین هم کتاب خیلی خوبی در این رابطه مسلحتها و دفع ها نوشته شده که البته اناوین فرق میکنه مثلا ابن آشور کتاب خیلی علمی در این رابطه داره از علمای تونس هست و تا امروز که امروزه علماء روی این مسائل خیلی دارند کار میکنند مثلا احمد ریسونی هم کتاب زیادی در این رابطه نوشته اگه میخوای کار کنی روی این مسائل ریسونی احمد ریسونی آره و خلاصه کتاب در این رابطه زیاده اصلا یعنی این در مورد مصلحت امام ابن قیم میگه که اگر مسئلی درش مصلحت وجود نداشت یا در مفسده‌ای وجود نداشت یا عدالت و حکمتی درش وجود نداشت از دین نیست اینو در اعلام الموقین میگه پس الدین مبنی علی المصالح فی جلبها و درء للقباه دین مبنی بر مصالح هست در جلبشون احکامات دینی که اومدند یا به خاطر مسلحت دین و دنیا هستند یا به خاطر مسلحت یکی از این دوتا یا به خاطر دفع مفسده از دین و دنیا یا فقط یکی از آن دو هستند حتی امام نجم الدین توفی حنبلی امام کی؟ نجم الدین توفی حنبلی که روزت النازر رو مختصر کرده روزت النازر ابن قدامه مقدسی رو که خود روزت النازر مختصر مستصفی امام غزالیه ایشون کتابی داره بنامه البلبل کتابای زیادی داره اصلا ایشون تا جای پیشرفته که گفته مصلحت حتی از اجماعی قویترش دونسته یعنی امام نجم الدینه توفی که یک شرحی بر عربین هم داره شرحی بر هم چی داره؟ 40 داره اونجا همین حرفشو میگه ولی این حرفش در رسالهش هست خب در هر صورت پس میگه فانتزاحما عدد المصالح یقدم الاعلى من المصالحی حالا که بحث رو در بیت 12م مطرح کرد میگه فانتزاحما عدد المصالحی اگر چند مصلحت با هم وجود داشتند خب اگر تونستی همه رو انجام بدی که اون مشکلی نیست ولی این زمانیه که شما از میان اینا ناچار بودی یکی رو انتخاب بکنی زمانی بود که از میان اینا چی کار کنی؟ مثلا وقت داره تموم میشه هم سنت هست و چی فرض هر تو تا مسلحت دیگه واجبات مستحبات اینا جز مسالح هست شما اینجا کدوم انتخاب میکنی؟ فرز. فرزو حالا ببین اینجا فانتزاحما عدد المصالح اگر زیاد بودند ترافیک بودند تعداد مصالحا یقدم الاعلى من المصالحی مقدم میشه مصلحت اعلا مصلحت بزرگتر شما از خواب بیدار شدی میخواد خورشید هم تولو کنه شما اول چی رو میخونید؟ فرض رو خب و تزاحم المفاسدی زدت تزاحم مصالح چیه؟ تزاحم مفسده است دیگه و تزاحم مصالح میگه وزده زده اینو به به مصالح برمیگرده و زدت مصالح تعدد مصالح تزاحم المفاسدی تزاحم مفاسد هست یرتقب الادنا من المفاسدی اونی که از میان مفسده ها ادنا ترس انسان بش میشه ببین همانطور که اصلا گناهان و علما چرا دسته بندی کردند و فرق میکند زنا. با فقط دست دادنه مثلا نوحرم فرق میکنن گناهان در, نزد در شریعت اسلام با هم دیگه چه هستند؟ فرق میکنن اصلا بعضی ها فیزادی هستند بعضی ها به خاطر چیزی دیگه اومدن از زوایا مختلف این گناهان چی میشن؟ تقسیم بندیشون کردن علما اگر قرار باشه از بین چند تا مفسده به ناچار انسان یکی رو انتخاب بکنه بعد کدوم انتخاب بکنه اونی رو که ادنایه اونی رو که چه ادنا هست پس فا وزده تزاحم المفاسدی وزده تعدد مصالح تزاحم مصالح تزاحم مفاسده همونی که ادناتره چی میشه؟ انجام میشه انجام میگیره بله اگر مثلا دو تا مال حرام بودن یکی در شبه وجود داره یکی قطعا حرامه شما کدوم انتخاب میکنی؟ بله پس مصلحت و مفزده رو مطرح کرد که دین مبنی بر مصلحت است بر جلب مصلحت و دفع مفسده و و قبیح بعد از این قاعده رو آورد که اگر اگر ها تضاحم داشتند و شما ناچار بودید که از اینا رو انتخاب بکنی کدوم انتخاب میکنی بالاترین کدوم و در مفسدها پاین ترین در مفسدها چی رو پاین اولویت بندی همین رو بیاند یک کتاب جالی بیداره ما موسا فقه الاولویات شیخ قرزاوی حالا شما اگر باش مخالف هستیم کاری ندارم ولی این کتاب مطالعی بکن یعنی yani جدی یک فقه بیت ببین من یک ای فقه بگم قاعده فقه ببین هر کسی که با ما مخالفه معنیشی نیست که تمام چیزا اشتباه باشه اشتباه باشه باور کن این فقه اولویات طبق نصوص قرآنی میاد میگی که چقدر این اولویت بندی اهمیت داره اولویت بندی چه داره؟ اهمیت داره اصلا در انجام مسلحت ها و در ترک مفسده ها در ترک چی؟ مفسده ها خب بریم جلوتر و من قواعد شریعتی التیسیرو فی کلی امر نبهو تأثیرو میگه و از قواعد دیگر شریعت چه هست؟ آسانگیری هست در هر امری که درش چه اومده است سختی اومده است. این هم اون قاعده پنجگانه کورا رو بیان میکنه که میگه المشقتو تجلب التسیره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المشقتو تجلب التيسير. يريد الله بكمل يسرى ولا يريد بكمل أصبا. ماله. ومن قواعد الشريعة التيسير. التيسير مو ابتداء وآخره. مجد تيسير. از قواعد شريعتك. ومن قواعد الشريعة التيسير. مجد تيسير از قواعد چه هست؟ شریعت است. في كل امر نابهو تأثيرو. در هر امری که درش مشاقات اومده هست. درش سختی اومده است. باله. البته این باید تنظیم شده باشد. اینجوری نباشه که انسان بیاد به بحانه کوچکترین سختی بس تمام امورات شریعت رو چکار بکنه؟ ترک بکنه خود شریعت برای این قاعده هزاران مثال فقی بیان کرده که چی چیزایی درشون مشقت وجود داره لذا اومده رخصت درشون آورده درشون چه آورده؟ رخصت آورده اینجوری نباشه که ما به بحانه سختی بیان شریعت رو چکار کنیم اینا همشون تنظیم شده هست وليس واجب بل اقتداری ولا محرم مع از بعدی چی میگه ماموسا؟ مولا جان میگه که واجب بدون قدرتی وجود ندارد وليس واجب بل اقتداری و واجب بدون توانایی وجود فتق الله مستتعتم فتق الله مستتعتم لا یکلف الله نفسا الا مصعه یکی از شرایط واجب بودن عمل بحث توانایی بحث قادر بودن بحث چیه؟ یعنی الله متعال بیش از توان انسان و مکلف امی‌کنند به خاطر این در اون واجباتی که تعیین نشده‌اند در اون واجباتی که سطحشون مشخص نیست نسبت به افراد فرق می‌کنند امر به معروف هرچقدر تو تواناییت بیشتر باشه وظیفه چیه بیشتره کارای خیر مطلق بر اساس توانایی تو روز قیامت چی میشی؟ بازخاص میشی در بحث خدمت مسائل علمی و اجتماعی و تمام مسائل پس میگه که ولیس واجب بل اقتداری و واجب بدون قدرت وجود ندارد ولا محرمون مع استراری وحرامی هم با استرار و ناچار وجود ندارد نا الا مستررتم اله فمن استر غير ولا عاد فلا اسم عليه آقا شما رفتی در بیابان رفتی در بیابان خوک حرامه فلان چیز دیگر حرامه شراب حرامه ولی زنده ماندن شما در گروه یک لیوان چیه شرابه خب در اون حالت در اون حالت به اندازه ای که به اندازه ای که جان تو رو نجات بدهی چی میشه، حلال میشه. همین همین داره میگه میگه ولا محرمون معص تراری، همراه با اضطرار حرام نیست حرامی وجود ندارد همراه با اجبار. که فما نستر غیر باقین ولا عادن فلا اسمه عليه وليدرين باب خب جل وتر مياره خودش وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الطرورة. الضرورة الضروره باره انجا قاعده بعديرو بيان ميكنه كي محظور حرام شده محظور هم مثل محرم اسم مفعوله اسم چیه حظر ممنوع حرام میگه وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره میگه همچون هر محظوری با ضرورت محظور نیست واللي بتي اندازه به همون اندازه‌ای که ضرورت اقتضا میکنه به چه اندازه؟ مرورت. به اندازه شما نه این که رفتی در بیابان بگی آقا من هفت هشت لیتره حالا آب کنیز شراب میخورم نه به اندازه ای که زنده ماندنه چیه؟ به اون بستگی داره به اندازه ای که گشنگید که نمیری چی بیشه؟ برطرف میشه چون یه قایده دیگه هست میگه از ضرورت تقدر و بقدری ها از ضرورتو تقدرو به اندازش ضرورت این کارو بر شما اقتضا کرده انجامش میدی ولی به اندازه ای که اون ضرورت چی میشه رفت میشه اینجوری نیست که به بحانه ضرورت ما بیارم خیلی از احکامات دینی رو چکار کنیم تحتیل کنیم قاعده بعدی و ترجع الاحکامو لليقين فلا يزيل الشك لل يقين احكم بيقين وبساعت يقينيان فلا يزيل شك لليقين فلا يزيل شك شك يقين رأس بين نمي برد شک یقین رو از بین نمی برد. وسواس دخلی ندارد تأثیری ندارد این هم جزوی قواعد پنجگانه بزرگ است که میگه الیاقینو لا یزولو به شک پس اینجا هم قواعده یکی از قواعد مشترک کبرار رو شما وضوع رو گرفتید بر اساس یقین بر اساس چی؟ یقین. یقین حالا شک داری که آیا وضوع شکسته یا نشکاس شک شاك داری شکی اینجا میگیم اصل بر یقین است اصل بر جه است اصل بر یقین است و در بقیه امورات و در بقیه چی امورات ولد و ترجع الاحکام للیقین احکام بی بي یقین باز میگردند فلا یزیل الشک للیقین پس زائل نمی‌کنه شک یقین ریزیلو باب مف... افعال هست ازاله یزیلو ازاله والاصل فی میاهنا الطحاره والارض والثياب والحجاره خوب اینجا قوایده کلیه دیگری رو داره بیان می‌کنه این بر اساس این قواید انسان فقر چکار می‌کنه تنظیم می‌کنه میگه اصل در آبها جس بر طهارت است اصل بر این است که آب جس طاهر است یکی از شما میاد میپرسه آقا این آب پاکه یا نه شما اگر گفتید بله دیگه حق نداره بگه دلیلت چیه اگر گفتید نجسه شما باید دلیل بیاری تو اصل بر چیه بر پاکیه والاصل في مياهنا الطهارة أصل در آبهاي ما برطهارت هست والأرضي والثيابي والحجارة ودر زمين ودر لباس ودر سن ميخواد بكه كأصل در أشياء برشه هست برطهارت هست مثاله رؤى ورده اين مثاله مثاله مختلفی رو آورد تا بیان بکند که اصل در اشیا بر چه هست؟ بر طهارت است. پس اصل در آبهای ما و در زمین و در لباس و در سنگ اصل بر چه هست؟ بر طهارت است. این هم یک قاعده کلی هست طبق این قاعده کلی اگر سائلی میخواست سؤال بپرسه چه چی چیزهایی پاک هستند؟ این سوالش چه هست؟ این سوالش؟ اشتباه نیست ولی باید جواب دهنده سوالش رو اینجوری اصلاح کند که چه چی چیزهای نجیسند چون اون نجیس ها کمترند اصل بر چیه؟ اصل بر تهارد شخصی اومد در رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم پرسید که چی چیزهای رواست در حج خب رواست ها زیادند اومد رو براش بیان کرد اومد برش چی رو بیان کرد لذا اصل در این موارد بر, پاکی بر پاکیست بر تهارد است. والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل ففهم هذا ما يملو إن دوتابت باهم دقي موقوف المعاني بودان ما موسى يعني بيته بيستو يكم ادامي بيته بيستومي ميقى أصل در أبضاء یعنی در زنها، در فرجها، واللحوم گوشتها، والنفس نفس، ونفس و اموال معصوم، اصل در و لحوم نفس و اموال شخص معصوم، نفس و اموال شخص معصوم تحریمها اصل در اینا چیه تحریم آقا انسانی که معصوم المال و معصوم الدم اصل اصل در نفس و در مالش بر چیه حرام من قتل النفسا کانما قتل الناسا یعنی هر کس نفسی را بکشد هرکس انسانی را بکوشد گویی که آلم را کشته است خب پس والاصل فی الابضاعی در زنان اصل برچه است؟ بر حرمت است مگر اینکه نکاهی انجام بگیره مگر اینکه چی انجام بگیره؟ نکاح انجام بگیره واللحوم والنفس والاموال و و نفس و اموال معصوم بالی؟ نمیتونیم نفس یکی رو تباه کنیم یا مال انسانی رو چکار کنیم زایه و تباه کنیم زایه و مگر در اون حالاتی که شخص تعدی کرده باشد و شریعت راه رو باز کرده باشد اون هم با قوانین و شرایط چیه؟ خاصه؟ خودش بس والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريموه حتى يجيء الحل تا إنك دليل بر حلال بودنش بي بس أصل دارين چيزها بر تحريمشان هست تا إنك چه بي حتى يجيء الحل حلال بودنش بي آيات فافهم حداك الله ما يملو نارو بفهم خدا وانتراه هدایت کند بله پس تا اینجای کار بیت بیسی چندین قاعده بسیار مهم رو بیان کرد المقاصدو الامورو به ها دین مبنی بر جلب مصلحت و درعه مفسده هست در این رابطه اگر ها تزاهم بودند اعلی انتخاب شود اگر مفسده ها تزاهم داشتند تا این ترین انتخاب شود المشقت و تجلب و تیسی رو خوندیم قاعده بعدی رو خوندیم که واجبی بدون قدرت وجود ندارد یعنی چیز بدون قدرت داشتن و بدون توانایی بر انسان واجب نیست لا یکلف الله نفسن الا وصعه بعدا و خوندیم که استرار هم با استرار چیز حرام نیست فمن از طر غیر باغن ولا عاد فلا اثمه عليه بعدش خوندیم که ضرورت هم در احکامات شرعی تأثیر داره ولی به اندازش و بعد از اون خوندیم که الیاقونو به شک و بعد از اون خوندیم چند اصل رو که اصل در بر برتهارت هست و اصل در زنها در نفسها و اموال بر حرمت است اصل در اینها بر چی است بر حرمت است مگر اینکه دلیلی بیاید و حلالشون کند مانند عقد نکاح مانند با شرایط و مسائل خاصی که در فقه بشکل ریزونجا چه شده اند بیان شده انت. موساقو فیروز باشد.